فصل سیزده هم. یک روز قبل از عید فسح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلا یهودای اسخریوتی پسر شمعون را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او میرود، از سر شفه برخواسته لباس خود را کنار گذاشت و حولهی گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها با حولهی که به کمر بسته بود وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید او به ایسا گفت ای خداوند، آیا تو می خواهی پاهای مرا بشویی؟ ایسا در جواب گفت تو اکنون نمیفهمی من چه می ولی بعداً خواهی فهمید پتروس گفت هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی ایسا به او گفت اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت پس ای خداوند نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشو. ایسا گفت کسی که قوص کرده است احتیاجی به شستشون ندارد. بجز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستی ولی نه همه. چون او میدانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود به همین دلیل گفت همه شما پاک نیستید. بعد از آنکه پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست از آنها پرسید آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما ای دادم تا همانطوری که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ قلامی از ارباب خود و هیچ قاسری از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید خوشا به حال شما، اگر به آن عمل نمایید آن چه می گویم مربوط به همه شما نیست من کسانی را که برگزیدم می شناسم اما این پیشگوی کتاب مقدس باید تحقق یابد آن کسی که با من نان نخورد، بر ضد من برخواسته است اکنون پیش از وقوع این را به شما میگویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید، هر که کسی را که من میفرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. وقتی عیسی این را گفت، روحان سخت مسترب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردن. زیرا نمی این را درباره کدام یک از آنها می گوید. یکی از شاگردان که ایسا را دوست می داشت، پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست، از ایسا بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به ایسا نزدیک تر شده از او پرسید، ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد، من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می برم و به او می دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوتی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت، آنچه را می زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد به محض اینکه یهودا لغمه را گرفت بیرون رفت و شب بود وقتی یهودا بیرون رفت عیسی گفت اکنون پسر انسان جلال میابد و به وسیله او خدا نیز جلال میابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم می‌گویم، آن آنجایی که من میروم شما نمی بیایید. به شما فرمان تازه ای یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. شمعون پتروس به او گفت: ای خداوند کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد، جایی که میروم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت، ای خداوند، چرا نمیتوانم همین حالا به دنبال تو بیایم، من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. عیسی به او جواب داد، آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروز سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.